عوض بالله سمیع العلیم من الشیطان اللعين الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و السلام و السلام علی نبینا و عاله تاهرین خدمت عزیزان دانشجو خودم ارز سلام داریم روز به خیل میکنیم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 سومین چیزی که میخوایم بخونیم سجع از سجع سجع کلمش مستره به خواندن کبوتر که با یه آهنگ میخونه ولی 23 دوباره همون رو میخونه میگن سجع الحمامت یعنی قرردد درست شو. و حالا بعداً میبینید که این محسنه رو هم اسمش رو سجع گذاشتند بدون وجه تصمیه نیست یعنی مشابهتی وجود پس از سج که لام داره یعنی اون سجعی که اصطلاح از محسنات لفظی علم بدیع ببینید هر کلامی دارای فقراتی است فقرات مثل ستون فقرات که شما می‌بینید اینطوری زد هم همه چیده شده کلام هم دارای فقراتی است این فقرات آخرشون یک کلبه ای دارند که اون دارای حرف سجدہ اون کلبه آخر میگن فاصله و به اون حرف میگن حرف سجع مثل شعر که آخرش کلبه هست بشه میگن قافیه و به اون حرف آخر که مثلا قصید لامیه است میگن حرف رویه درست شد؟ پس قافیه و حرف روی مال شعر فاصله و حرف سجع مال نصره. یعنی شما وقتی مثلا میگید که انا اعطیناك الكوثر این الكوثر فاصله است اون را حرف سجع درست انا اعطیناك الكوثر و سل لرب بکه ونهر باز ونهر فاصله است اون را حرف سجع ان نشانه که هول ابتر برشو. ابتر همینطوره و را رو دارید شما میدید نگاه کنید سجع رو چگونه تعریف میکنه از سجعه تو قاعده توافق الفاصلت این. توافق دوتا فاصله اقل سج دوتاست اقل سج دوتاست ولی آیا دوتا بیشتر بله دو صد تا هم ممکنه باشه الان بعضی از سورهای قرآن هستش سجع داره اما کمه کمش دوتاست لذا اگه گفته توافق یه اقلشو گفته توافق دوتا فاصله فل حرف فل اخیر توافق کنن اون دوتا فاصله اون کلمه های آخر در حرف آخر که اون حرف آخرش نه حرف سرش و اقلش دوتاست اکثرش میتونه بیشتر باشه سه تا چهار تا پنج تا گاهی اوقات میبینی است بعد دوباره حرف سج عوض میشه سه تای دیگه مثلا دوتا با لامه سه تا با نونه. دوباره دوتا با مثلا کاف میشه سج در واقع توافق فاصله ها در حرف آخره که اولش دوتست اکثرش هم حد نداره هر چقدر که کلام زیبایی خودش رو حفظ کنه و شرایطش اقتضا کنه شما میتونید از سج استفاده موسیقی آخر بقرات رو درست. سجع سه جور میتونه باشه یعنی دوتا دو تا فاصله دو تا که پشت سر هم میان سه جور میتونن باشد یکی اینکه فاصله ها متساوی باشند در تعداد حروف تعداد و ها همینطور که با چشممون نگاه میکنیم درست شد می‌بینیم مصابیه مثلا انا اعتینا کل کوزر فصل لیل ربک ونهر این نشانه که هول شما نگاه میکنید میبینید ستا فقره که سجع را داره این ستا با هم برابره حالا ممکنه یه مقادم بشینه حروفشو بشماره مثلا یکی شیفده تا باشه یکی شیفده تا یکی مثلا شونزه تا ولی دیگاه که بکنید میدید فقرات با هم مساویه بلند و کوتاه نیستن حالا مساویه در حروف باشن یا با چشم که میبینیم با تلفظ که میشنویم با هم مساویه حالا شما شنیدید دیگه اناع تا ایناکالکاوسر فصل الربکون هر این نشانه که همان با هم مصابیه. این بهترین نوع سجع درست شد نظام میگه وعف زلوه و بهترین سجع ما تساوت فقره اونیه که فقراتش با هم مساوی باشه هم؟ هر کدوم از اون فقره ها با هم مساوی میمونه دو شکل دیگه این بهترینش، افصل دو شکل دیگه کدومه؟ مرتبه پایین تر از این اونیه که فقره بعدی نسبت به فقره قبلی بلندتر باشه فقره بعدی نسبت به فقره قبلی بلندتر باشد مصبر على عصر ان الانسان لفي خسر ان الانسان لفي خسر بلندتر از بل عصر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بن و تواصل به صبر پسره اما بگید این بعدی هم بلندتر از قبله کماتبه دوم سجده مثل و الفجر و لیال العشر این لیال العشر بلندتر از الفجر اینم سجع نوع دومه نوع شد نوع سوانش اونیه که ما بعد نسبت به ما قبل کتاحتر باشه ما بعد نسبت به ما قبل بگید کتاحتر باشه ما بعد نسبت به ما قبل باشه این میشه مرتبه صفح یعنی قبلیه بلندتر از بعدیه در فقرات حالا اونی که تصاوی فقراتش زیباتره خب مشخصه دیگه چون گوش انسان وقتی سج اولو میشنوه منتظره بگید همون اندازه در سجع دومه خب وقتی همون اندازه هم بشه هم گویندهه براش راحتتر گفتن چون زبانش سر همونجا ترمز میکنه هم شنوندهه انتظارش برآورده میشه جا اما اگه بلندتر باشه باز خیلی ضرری نمیزنه راسته که انتظار هر دو طرف رو به قول خودمون مثل میرن مثل اسب سواری میمونه توی اون جایی که مساویه گفتن صد متر مثلا دوی صد متر یا مثلا یک کیلومتر این عصف رو که میتازه سر یک کیلومتر هم وای میسته خب هم انتظار بیننده هم خود سوار سوار برمیاد که اینجا اسکای طور میسه. اما اگه فقره یه دوم بلندتر باشه مثل اینه که منتظر اینه که سر صد متر یا یک کیلومتر بایسته ولی میرسه به اونجا میبینه که اونجا تمام نشد خود یه مقدار نهیب میزنه میره جلوتر تا میرسه به میبینه سر یک کیلومتر تمام نشد یه نهیبی به عصبه میزنه میرسه نمیفته منجر به قول خودمون به کار ناگهانی براش نمیشه ولی خب یه مقدار انتظار گوینده و شنونده اینه که اینجا تموم شه ولی نمیشه یه ذره ادامه میده میرسه بشه. اما اونجایی که بعدی کوتاهتر از ما قبله این وقتی سجه اولو میشنوه میبینه مثلا 9 تا کلمه انتظارش اینه که سجع دوبام نه تا کلمه باشه ولی سر چهار تا کلمه هم گوینده هم شنونده میبینه رسید به سج پنج تا کلمه رسید به سج اینجا مثل کسیه که خیز برداشته یک کیلومتر رو با اسب به تازه ولی سر مثلا 250 مجبور میشه وایسه لذا باید ترمز رو بکشه خلاف انتظاره درامر این هر تو قرآن هست یعنی توی سج هر مونده به اینکه شما کدومش رو استفاده بکنی بعد بلاقت کدومش اون مختزای حال کدومش رو میپسنده درست شد هر کدوم رسیده استفاده شده مثلا نا انزلناهو فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر اندازه هم لیلت القدر خیرون منعلف شهر بلنده تن از زل الملاهی که تو برگوه ره. تا آخر بخون بلنده همه جورش تو قرآن هست هم نوع یکش هم نوع دوش هم نوع سهش میدهیم مثل چی میمونه مثل طلا میمونه مثلا مثال بزن مثل اون نوع یکش مثل طلای 24 ایار نوع دوش مثل مثلا تلای 18 ایاره نوع سهش مثل طلای مثلا 17 ایار همش تلاست فرکسی هم ممکنه که با قول خودمون مخواد استفاده کنی یکی از اینها رو توی یه جایی مناسب پیدا میکنه استفاده میکنه قطعا کلامی که سجع دارد ولو سجع نوع سوم داشته باشد خیلی خیلی برتر است نسبت به کلام بلیغی که اینو نداره یعنی اگه نداشت قطعا سطحش پایین تر از اینی که این هست مثل کسی که به یک مهمانی میره قلاهای 17 ایار استفاده کرده به عنوان محسنات دست بند و گردم بنده. خب این خیلی زیباتر از اونیه که هیچی وسایل زینتی ندارد پس یه موقع این به ذهن نید که چرا پس بنابراین سج اسیه هم هست خب باش اشکالی نداره یه جا این مناسب به کار می رفته یه جا اون یکی قصد اینه که معنا و مفهوم رو برسونید حالا معنا و مفهوم با یکی از این اسباب زیبایی برسه این مبحث افر این که گفته پس بنامه افزلو هو ما تساوت فقه دیگه اون دو نوع رو بیان نکرده که گفتیم اگر بعدی بلندتر باشه میشه. رتبه دوم اگر بعدی کوتاهتر باشه میشه رتبه سوم و دلیلش رو هم گفت این مطلب مطلب دوم که از همه مهمتره سجع به این هستش که شما فقرات رو آخرش رو وقف بر سکون کنید یعنی سج شرطش وقف بر سکونه یعنی بگی انا اعطیناك الكاوسر فصل لله ربکه و نه هر اننشکه اول ابتر. اگر بگی انعاعت اینا کل کا سره فصل لله ربک و این سجی وجود ندا. وقف به سکون هرقره. این شرط مهم نیست در سجرعه که باید وقف به سکون بشه. نگاه کنید حالا دیگه که این مطلب رو دیدید، به مت از سجع سجع الا امثلتون مثال ها قال صلى الله عليه و آله و سلم نبی گرامی اسلام فرموده اللهم اعت منفقن خلفا و اعط ممسكن تلفه پیغمبر خدا دعا میفرماید اللهم خدایا اعط عطا کن ملغا به کسی که هزینه میکنه دست دهنده داره به بیچارگان میرسه انفاق میکنه به این بده خلق جانشین یعنی دستشو رو پر کن خدایا ها اونی که دست به جیب است و خیر و برکتش به دیگران میرسه اینو جانشین بهش بده و عطه ممسکند و خدایا کسی که قایم میکنه و به کسی نمیده و دستگیری نمیکنه به این هم بده تلف نداشته باشه مردم راحتترند. تا اینکه می‌بینند دود دارد و به یک نفر هم یک ریال بدیت. الان منفق و ممسک با هم دیگه صنعت تباق دارند، خلف و تلف هم، یعنی اونو بذار فاجی داره، جانشین بشه و براش برسه، این یکی نازبن بره. این هم با هم پس بنابر این ممکنه که در یک عبارتی شما چند تا صنعت بدیعی داشته باشید. داشت. این یک مطلب دیگه اینه ما اینو باید بخونیم اللهم اعت منفقن خلفا و اعت ممسکن تلفا ولی اگر خوندیم اللهم اعت منفقن خلفن و اعت ممسکن تلفا دیگه سرج از بین درد خب این دوتا بود دروصو پس بنابراین ما اینجا سجمون از نوع بگید نوع اولی که دو تا فقره با همدیگه کاملا مساوی و متوازن است رو نگاه کنید دو و قال عربیون زهب ببنه سیلو عرب بیابانی که زهب ببنهی برد پسرش رو از سیلو سیلی که اومده بود یه سیل اومد بچه شو بود این طور گفت الله اومد این الله اومد جداستی یعنی بعدش بیرگول داره اونو حساب نمی ما بعد میگه این کن تقدر ابلیت نباید بگیم ابلایت هست این کن قد ابلیت فا این نکت خالما قد آفید گفته خدایا این کن قد ابلیت اگر یک بار بلا دادی این کن قد ابلیت یعنی ابلیتنا اگر یک بار بر ما بلا نازل کردی فا این نکت خالما قد آفید طالما یعنی کثیر اما خیلی زیاد طالف فعل اون ما رو بسید امای کافه که میاد دیگه این نیاز به فائل نداره این فعل میشه قید یعنی کثیرا فا طالما قد آفید یعنی کسیرن قد آفید اگر یک بار به بلاد و کردی بارها و بارها و بارها عافیت بخشید یه بار خلاص سیل اومد و ما مصیبت رو ولی بارها و بارها دفع بلا شد تا علماء قد آفید بازم دوتا جمله حالا چرا اینا رو دوتا دوتا دوتا دوتا مثال زد یکی پیغمبر بودی که یه عرابی. یعنی کلام فسیح هم کلام پیغمبر میتونه کلام فسیح با شما این فساحت و بلاخت میخونیم زیبایی و محسنات داشته باش. هم یه کلام عربی. بعدی رو نگاه کنید سه تا پس ما که گفتیم اقلش دو تاست. اقلش دو تاست ممکنه بیش از دو تا تا هر چقدر که کلام اختضا کنه بشه بعد ممکنه گاهی اوقات دو تاش سجع با لام باشه بعد سه تا سجع با نون بیاد بعد دوباره دو تا سجع با کاف بیاد اینطوری هم هست شما تو قرآن همین رو این هم به عنوان حدیث نقل شده میگه الهرلو اضافه وعده وفا وعده میگه انسان آزاده آدم آزاده آدمی که سرش به تنش میارزه الهرلو اضافه وعده وفا اگر وعده به کسی بده نسبت به چیزی به هرچی که وعده بده ولو به بچه وعده بده وفا حتما وفا میکن آدم پدر مادردار هیچ موقع زیر وعده خودش نمیزن انسان آزاده اگر وعدهی دهد حتما وفا خواهد کرد اگر دیدید وفا نکرده انسان از آزادگی به و ازا اعان کفا و اگر کسی رو آستین بالا بزنه و کمک کنه ازاعانه کفا کفا اینجا یه مخبولیه یعنی بی نیازش میکنه یعنی آدم آزاده اینطوریه که اگر رفتی بهش گفتی من نیازمندم و غیره اگر آستین بالا زد مشکل حل کنه مشکل حل میکنه کفا تو رو بی نیاز میکنه از اینکه بری سراغ کس دیگه و اینها این نیست که تو میری میگی مثلا فرض کن من یک میلیون تومن باید به بیمارستان بدم میگه حالا این ده هزار تومن رو بگیر آن نه تلاشش رو میکنه که تو رو بی نیاز کنه از اینکه بری تو خب ده هزار تومن بگیری باید دوباره به صد نفر دیگه مراجعه کنی یعنی حد نهایت تلاش خودش رو میکنه که تو رو بی نیاز. اذا اعانه کفا و اذا ملکه اف باز آدم هو و آزاده اینه اذا ملکه اف اگر یه موقع کسی بهش ظلم کرده حالا ورق برگشته و این مالک شده یعنی اذا قدره حالا قدرت با اینه عفا میبخشید انتقام نمیگیره مثل پیغمبر خدا مکیان چقدر به برای عذیت کردند سه سال با تمام خانواده تو شه و طالب محاصره کردن جوری که حضرت خدیجه خدیچه دنیا رفت ولی وقتی که آمد مت مکه که چند سال بعد همه رو بخشید قونت و مد دلق آقا همه تو و ملکه سه تا سه شما میبینید که فقراتش میزونه البحث. ازا تعملت المثالین العولین وجدت کلن من هما مرکبن من فقرتین درست از دو فقره متحدتین فی الحرف الاخیر و ازا تعملت المثال الثالث وجدت ها مرکبن من اکثر من فقرتین متماسلتین فی الحرف الاخیر و یوسن محازن نوع من الکلام سجن اینمیش میگن سجع پایین رو آکنید تشبیهان و به سجع ال حمامته به خوندن کبوتر ازا حدرت اون موقعی که قر زده میخونه و تو سم ما حرکت ال من کل فقره فاصله نامیده میشه اون کلمه آخر از هر فقری فاصله گفتم در شعر بهش میگن قافیه در اینجا میگن فاصله تو نصر تو شعر به اون حرف آخر میگن حرف روی توی اینجا بهش میگن حرف سر و توس و توسکن تو و ساکن میشه و توسکن الفاصلتو هر دو درسته و فاصله ساکن میشه دائمان به نصر للوقت و توسکنه که توسکنه بهتر از توسکنه است سکنه هم یعنی ساکنش گرد و توسک کنور فاصلتو دائمان به نصر لدوه شرطش هم گفتم بید. و افصل و سجعه ما تصاوت فقرا درست شد یه جایی رو بگیم بهتون ببینید سج اقتباس جناس که الان ما خوندیم که الان محسنات لفظیه بود و بعد محسنات معنوی رو میخونیم همه اینها محسنا خوب هم. ولی اینها همه زیباییشون بعد از اینه که شما کلامت بلیغ شده باشه یعنی صحیح و فسیح مطابق مختضای حال اینها زیبایی رو جایی ایجاد میکنن اینا میگن زیبایی عرضی جای زیبایی عرضی ایجاد میکنن که زیبایی ذاتی وجود داشته باشه اگه زیبایی ذاتی باشه زیبایی های عرضی کار خودشون این یه مطلب مطلب دوم اینه که اصل معنا و مفهوم و که ما داریم صحبت میکنیم اصل اونه اون باید به با قول خودمون ملاک باشه که اون از بین نره اون تو کلام حتما صد درصد رایت بشه اگر من دنبال سج بدهم تو کلام تکلف یعنی زحمت زیادی بکشم که سجع درست کنم تصنعی مصنوعی بعد معنا رو تحت تاثیر قرار بدم این اصلا نه تنها زیبانه میکنه بلکه بگید کلام رو زشتم هم میکنه تو باید حرفتو بزنی در عینش بگید سجع پیدا میشه مثل کلام امیر در نهت مثل همه احادیثی که دیدیم پیغمبر مطلب رو بیان کرده بعد دیدیم عجب چقدر زیبا هم این مطلبی که مطابق مختزای حاله و صحیح و فسیحه زیبایی سج هم درش ریخته شده یعنی به قصد سج گفته نشده نگاه چی میگه میگه ولای احسان و سج و الا اضا کنه رسیند ترکیب یعنی موقعی که ترکیبش رسین باشه محکم باشه استوار باشه بلیغ باشه سلیمن مند تکلف زور نزده باشه سعجه درست کنه زور میزنه که سعجه درست کنه آه؟ معنا تیب بریده میشه و خراب میشه یه چیز بی خودی درده درسته که اصل معناست خالیمند تکرار بی غیر ته خالی باشه از تکرار گاهی اوقات میبینی سعجه میخواد درست کنه خب اون کلمه آخر که سعجه توشه یه کلمه استفاده کرده خورشید شد اینجا دوباره سجع دوم باز با خورشید، واز سوم سجع سوم با خورشید. نه دیگه یه بار خورشید، یه بار رشید، یه بار شهید. آه اینطور کلمات متعدد بیار که لکل جدیدن لذتون هر کلمه جدید بله گاهی اوقات هستش که میبینی یه موقع تکرار هم اتفاق میفته اون دیگه اتفاقیه ولی نه اینکه تو میخوایی سرجعه درست کنی همش بگیر از تکرار استفاده کردی پس بنابراین خالی من تکرار تکرار با تکرار شما سرجعه درست نکنی اما فی غیر فایده گایی اوقات تکرار باعث فایده است، میخواسته تأکید کنه اونه جا بینده تشکال نداره دوبار تکرار شد سه بار تکرار شد. درست شد کما رعی تفعل همسلته کما رعی تفعل همسلته شما مشخص بود. الان توی تمرینات نگاه کنید یه حدیث از نبی گرامی اسلام نقل فرموده میگه رحم الله ها این رحم الله و عمرن عبدن فعل و فایل و مخروف. بعد میگه قال خیرن فقنم قال خیرن فقنم حرف خوب میزنه و به همون اکتفا میکنه او سکت فسلم یا نه اگه حرف خوب بلد نیست سکت میشه سکوت بلده فسلم اون موقع دیگه سلامت هم میماند از اشکال و به او نمیگن مردم دهن شبای جدیه مشکل و پرتیف یا خوب حرف میزنه و به همون مقداری که خوب است و درست اکتفا میکنه یا نه حرف نمیزنه و سالم میماند از عوارض پرتوکنه خوب خب با فسلم شما این دوتا فاصله رو میبینید و بر برمیم بسیار هم زیاده. خب سجع تمام شد درست شد بریم سر محسنات محنوی ما معنوی اول از توریه شروع میکنه توریه بهش صنعت ایهام هم میگن توریه یا ایهام که توریه لفظ مشغول شد کلمه توریه مستر باب تفعیله دیگه ور رای و ورلی مثل صف و یوسفی تصفیهتن صف و یوسفی زک و زکی تذیکیت که وقتی ناقص باشه مسترش بر وزن همی هست توریه مر را یعنی پوشوند یعنی ستره هست خب هم ما بعدا که نگاه کنیم میبینیم که چرا بهش گفتن توریه توریه چیست حالا من بگم یه مثالم بزنم شما دیگه متوجه میشید. بعد وارد خوندن عبارات میشه. طوری اینه ما به عنوان متکلم لفظ زیرو ذکر میکنیم یه لفظ مفرد یه کلمه مفرد ذکر میکنیم. این مفرد دو تا معنا داره. دو تا معنا. ما داریم کلماتی که دو تا معنا داره. بله. داشت. دو تا معنا. یه معناش غریب غریب وقاف و زود به ذهن آدم میاد اما تو این عبارتی که متکلم ذکر کرده مقصود نیست غریب غیر مقصوده یک معنای دیگه بعید بعیده معنایی که بعیده دیر به ذهن میاد مخفیه پنهانه اما همینم هم مراده مقصوده با قرینه با قرینه ای که تو کلامه این یعنی اون معنای غریب با و ظاهر به ذهن انسان زود میرسه چون انسان خیلی با اون معنوسه بعد وقتی دقت میکنیم ايه قرینه هستش که بگید منظور این معنای بعیده که مقصود ماست با غرینه هم برد. درست شد؟ نگاه کنید توریه رو بخونم از توریه تو انیز کنن متکلم لغزن لفظن مفلدن متکلم یه لفظ مفلد ذکر میکنه لهو معنیان دو تا معنا داره یه معناش قریبون ظاهر غیر و مراده یه معناش هم نزدیکه هم ظاهره ولی مراد نیست مقصودش این نیست یه معنای دیگه بعیدون دوره خفیدون پنهان خوالمراض فقط هم همین مورد نظره و ایدون خفیدون هول همین مقصوده اما با وجود قرینه همین فهمیده میشه که دوم هم نظره نظر خوب فهمید جدول من یه مثال بزنم نگاه کنید سوره واقعت حتما خوندید میگه از شمس و ولقمرو به حسبان از شمس و ولقمرو به حسبان حسبان با های جیمی و سین به حسبان و نجم و شجر و یست جدان و نجم و شجر و یست جدان خدای تالا درست شد میگه این عالم هستی نظم داره بی نظم نیست درست شد شما در این در سوره الرحمن گفتم واقعه اگر گفتم اشتباه کردم در سوره الرحمان درست شد علم القرآن درست بعد میرسید به این آیه و شمس و از شمس و القمر رو به حسبان و نجم و شجر و یست جدان ام. چی شد سوره الرحمن الشمس و القمر رو به حسبان این باب معنای فیه حسبان هم یعنی حساب مصدر دیگه حساب میگه الشمس و القمر رو به حسبان یعنی فی حسابه میگه این خورشید آسمون میبینید به این بزرگی این ماه رو میبینید الشمس و القمر به حسبان فی حسابه در یه حساب و کتاب خیلی دقیق هست حسبان نکره یعنی عزیب در یه حساب و کتاب دقیق هست همینطور دیگه نیستش الان شما میبینید کس... کسوف خسوف حرکت سیارات دیگه به دور خورشید. چقدر تو حساب و کتاب دقیق حرکت ماه به دور زمین اینا حساب کتاب داره قشم میشنن دقیق حساب از شمس و رو به حسبان بعد میگه و نجم و, و شجر و یست جدان یست جدان یعنی ینقادان استاره مسرعه تبعیست یعنی موتی امر خدان خدا سجده خدا رو میکنن یعنی موتی هم میگه والشمس از و ولغمه به حسبان و نجم و شجر و یسجدان یسجدان یعنی ینقادان. هی اطاعت میکنه اونا در حساب و کتاب ویزون هستند. اینام هم یسجدان فعل مزاره یعنی مدام اطاعت امر خدا رو میکنه چی؟ و نجم و شجر آدم نجم رو که میشنوه با توجب اینکه شمس و خمرم قبلش اومده ایتا اون معنای غریب هم نجم به ذهنش میرسه. که یعنی چی؟ یعنی ستاره. میشه و ستارگان. بعد و شجر به اون عطف شده به جای هم نجم. عطف شده این دوتا مبتده یس جدان خبر. ترجمه میشه و ستارگان. و درختان بگید و شجر یس جدان. مطیعن به قرآنی که مزقه نظمه چطور شد اینجا شد؟ ستارگان و درختان آن تناسب ندارن که شمس و قمر با هم تناسب دارن به حسبان بی حساب و نجم و شجر و یست شدان آن یعنی این دوتا هم مطی امر خدا خب این دوتا باید با هم تناسب داشتون سی ستار و درخت شدن تناسبی دارن بعد به قرینه یست شدان آدم میفهمه که ای این دوتا وقتی به هم حتف شده و بحث نظمه آلم هستی است و اون دوتا شمس و قمر رو که بزرگتر از نجم هستن گفته حساب دارن دیگه یعنی ستاره ها به طریق اولا پس اینجا درست و نجم یه معنای دیگه داره میره که لغت نگاه میگه ای نجم یک معنای بعیدی هم داره به معنای گیاهه ما نباتاتمون دو قسمن، یه سری گیاه هم مثل بوته هم. بوته میدیم ما بهشون بوته است مثل بوته هندوانه، خربوسه، کدو بادمجان اینجور چیزا یه سری هم درخت مثل درخت گردو شجر نوع درخت مثل خورما گردو اینا نجم بوته است اون میشه و بوته و گیاه یعنی اونا اجرام آسمانی اند درست شد که هیچ حیاتی ندارند جامداتند اونها در حساب و کتاب الهیه نباتات هم که اقل با قول خودمون نباتات هم که عقل حیات رو دارند درست شد اینها هم مطی هم به خدا پس شما که عقلم دارید و غیره نمیخواید مطیع باشید نمیخواید در مسیر حرکت کنید میفهمید که این ون نجم به معنایه بگو، ون نجم به معنایه بوته هاست که با وششجر سازگاری داره و به قرینه وششجر معنا میشه و اینلا خدایی که داره نظم رو بیام میکنه نمیاد که اینطور تو عبارتش بی نظمی بساره درست شد؟ فهمیدید یه معنای غریب داشت ستاره که شمس و غمر هم کمکش میکرد که این به ذهن آدم زودتر برسه اما به قلیه وشجر و خبرشون که یست شدان این دوتا رو با هم آورده و بحث نظمم هست و داره نباتات رو میخواد بیان کنه که متی عمر خدان که اقل حیات رو دارند لذا میفهمیم که ون نجم یعنی ون بوته ها درست شو؟ یه مثال دیگه هم بزنید. حالا برای خودتون این در مطلب رو بگیرید بعد تم مثال رو میخونیم مالی ببینید توی قرآن میگه که آدمی که کافر باشه خدا اونو به بهشت نمیبره میگه کافر به بهشت نمیره درست شد؟ حتی یل جل جملو حتی یل جل جمل فی سم بل غیات این لا جنن یعنی که یعنی کفار لایا کلی هنچنن حتی یالج جالج جالجو یعنی دخل حتی یالج جملو جمالو فی سمل خیاط حتی یالج جملو جمالو فی سمل خیاط تو شورع عرف بعدا نگاه پس لایت خلون الجنه کفار وارد بهش نمیشن حتی یلجل مگر اینکه که یلجل مگر اینکه داخل بشه الجمل فی سمبل الخیاط در سوراخ سوزن سمبل این سوراخ سوزن یعنی چی؟ یعنی کافر اصلا محاله که وارد بهش بشه مثل که میگه من با تو حرف نمیزنم مگر آسمون بیاد زمین زمین برای آسمون اون که نمیشه خب پس منم هیچ مقدر میگه یعنی تعریق یعنی به محال استلاحه میگن جمال دو تا معنا داره یکی شطره نره یعنی اینو زیاد دیدید جمعشم جمال درست شد. ش نه این خطتون بلد. دارید. هل جمل. اما شطور و سوراخ سوزن بشه حتی یله جل جمل و فیسم ملخیاب. مگر شطور وارد سوراخ سوزن بشه. ا اگه میگ شطور وارد سوراخ مار بشه همون شطور ناز مار اما سوراخ سوزن وقتی گفته میشه جمل دیگه به معنای شطور تناسب نداره که بگیم شطور وارد سوراخ موش بشه خب میشه بگیم این میشه یعنی نمیتونه میتونه که بره تو سوراخ موش درست شو پس بنابراین هیچ واقعا هم کافر وارد بهش نمیشه اما برای سوراخ سوزن باید شی مفتول باشه مثل نخ نخو و سوراخ سوزن شتر و سوزن که سوراخ سوزن معنا نداره کسی شطور رو که مثل گوی میمونه که تو سوراخ سوزن نمیکنه درست بعد میرید به خاطر همین تناسبی که ندارد جمل با سوراخ سوزن وقتی شما مراجعه میکنید به لغت میبینید جمل یه معنای دیگه هم داره جمل تناب بسیار کنفتیه که کشتی رو باش میبستند چیزای خیلی دروش رو باش میبستند مثلا بگیم سیم بکسر یا میشه میگه کافر وارد بهش نمیشه مگر کسی بتونه سیم بکسر رو بکنه توی سراخ سوزن یا تناب رو بکنه توی سراخ سوزن یه نفر یه تنابی که اطرش مثلا سه چار سانته خب گرفته یه سوراخ سوزنی که میگهم چیکار میکنم میگه میخوام سوزن رو نخ کنم میگهم نخد کدومه میگه اینا این نمیشه که هرچقدر این بزنه این نخه خیلی وسعتش بیشتر از بگید سوراخ این سوزن نمیشه بگه تنها میخوام بکنم که سوراخ سوزن و از صبح تا شبه سرش رو فیس کنه کنه مثل کسی که مخواد سوزن نخ کنه تا اون هم بشینه نمیتونه این کار کن. کافر وارد بهش نمیشه مگر این که سین بکسر رو بتونی بکنی تو سوره سوزن. خب نمیشه پس باین نمیشه. گرفتی چی شد؟ الله درست شد. نه تا مثال زدم که شما بتونید داشته باشید مثال مثالهای بعد رو نظر به این میگن تئوری. کنیم از تئوریات و عنو. یاز کرال متکلم و لفظن مفهودن و هو معنایانه قریب و نظاره غیر مرادن و بیاید خفی خفیق ون به مراد برقرینتال مقام. درست شد. حالا بیاید دیگه خودشون هم به سه تا مثال زده دوتا من از قرآن مثال زدم میسیم تا مثال زده حالا مثال هایشون رو کنیم. بعد نگاه کنید یه چیزی میخواستم بهتون بگم ببینید درسته که ما الان داریم توریه میخونیم هم تو قرآن ما توی و نجم و شجر توریه دیدیم و نجم و شجر رو هم توی حتی یلجل جمل و فیستان ملخیات دیدیم هم توی اینا میبینیم یه جاهای توریه خیلی قشنگه یعنی توریه های قرآن خیلی قشنگتر از این توریه های حالا این به عنوان شاهران بزرگ عرب نقل کرده بله توریه توریه هست سجع اوه اما این نیستش که هر کلامی که توریه دارد با اون کلامی که توریه دارد توریه ها بگیر هر دو محسنه بدیعی هر دو نمره 20 نه یه توریه خیلی قشنگه یه توریه دیگه قشنگه یه توریه دیگه قشنگه یه ذره پاید میخوام بگم بهتون که محسنات بدیعی هم مثل مثلا فرض کن علنگو یه علنگو خب دلسته تلاس مثل مفتول میمونه یه مفتولی رو انداخته حلقه یه دور دستش یکی دیگه این رو نمیدونم خلاصی زینتش کرده یه جوری روش کار شده یکی دیگه خیلی کار کرده بیشتر همش الانگوه اما با هم فرق میکنه یعنی با قول خودمون ساختشون ارزشمندتر کرده اونها رو هر سه الانگوست هر چهارتا الانگوست اما یکی بابت ساختی که رو صورت گرفته زیبایی خیلی برتری رو نسبت به دیگری بیده اینشالله فهمیدید من چه میگه من برای همین قرآن مثال زدم حالا اینا رو بخونم نگاه کنیم قال سراج الدین الوراق سراج الدین وراغ بوده این آقای سراج الدین وراغ میگه شایرون مصریبون لطق شاره است مصری و بسیار لطیف برعفت توریهت و قیره ها من انواع بدی مهارت زیادی داشته در توریه و پردگیه چیزها از انواع بدی برعفت توریهت و قیره ها من انواع بدی و لهو شعرون کسی رون جید شعر زیاد و عشنگی داره ولد دستند ست و مات اش و ما و خمسن و تسید سال شیشتر نویتن دنیا چی میگه میگه اصون و عدیم و وجهی ان او اناسه یعنی احفظ و حفظ میکنه اه حفظ میکنم. عدیم یعنی پوست. پوست صورتم رو یعنی روی خودم. ان اوناسن از مردم روی خودم رو از مردمی حفظ میکنم. نمخواب قیافه مردمی رو ببینم. چشمم رو تو چشم آدمایی هایی نمیدازم. از عدیم و وجهی ان اوناسن. این صفت اوناسه لقا الموت انده همو العدیب یعنی لقا العدیب لقاء الموت مردمی که دیدن مرگ، ملاقات با مرگ، انده پیش اونها لقا العدیب مثل دیدن یه آدم عدیب عدیب میبینن انگار اسرائیل دیدن اون العدیبو به حصف مضافه یعنی لقاول عدیب لقاول الموت، انده هم یعنی که لقاول دیدن مرگ دیدن اسرائیل، پیش اونها دقیقا مثل دیدن انسان عدیبه عدیب میبینن انگار اسرائیل ازرائیل دیدن فهمیدی چی شده لقاء الموت اندهم لقاء العذيب تشبيهام تشبیه بلیغ آورده از نوع مغلوب ها نگفته لقاء العذيب اندهم لقاء الموت میگه ازرائیل میبینند مثل اینه که عدیب دیدن یعنی ازرائیل دیدن براشون مشبهه راحت تر از اینه که عدیب ببینن شد تشبیه بلیغ مغلوبه خیلی مبالغه نمیخوان چشم هم بیافته تو چشم مردمانی که اسرائیل که میبینند انگار عدیب دیدند و رب و شعر انده و شر یعنی شاعر رب شعر کناهی از شاعر دیه کناهی مصور خوندیم اینا رو. دیدن شاعر انده هم پیش اینها بغیزون بغیز یعنی مبغوظ خیلی مکروه مورد بغز شاعر پیش اینها خیلی مبغوظه مورد بغز شاعر دشمن اینها سنگاه منو وافا بهی لهمو حبیب وافا بهی یعنی بیاره بهی به اون شعر میخوره کنه ولو این شعر رو برای اونها بیاره حبیب میگه شاعر پیش اینها مورد بغض دشمنه اگرچه اون شعر رو حبیب برای اینها بیاره آدم به غلینه بغیز فکر میکنه که حبیب یعنی محبوب یعنی معشوق میگه شاعر پیش اینها مورد بغض ولی اون شعر رو محبوب براشون بخونه یعنی اصلا معنا نداره اینطوری شعراتون ممکنه یک کسی محبوب من باشه اصلا اما شعر میگه بخون، میخونه عطل مطل تو طول قادم بریش یعنی نمیشه که هر شعری رو که محبوب خوند حبیب خوند شعری باشه که خوب باشه که میگه شاعر پیش اینها مورد بغضه ولو اینکه شعر رو حبیب براشون بگید پس این حبیب اینجا به معنای محبوب و شخص مورد محبت نیست بلکه حبیب اینجا به معنای حبیب ابن عوث تاییه یعنی عبو تمام میگه ولو این که شعر رو ابو تمام بگه اینا از شاعر بعدشون میاد. مثلا اینکه بگیم اینا دشمن شعرن از شاعر بعدشون میاد. ولو این که سعدی شعر باشه. خب بله. یعنی اگر کسی واقعا سعدی هم شعر بگه از شعر بعدش میاد خب معلومه این آدم آدم اشکال داره. ولی آدم گاهی اوقات ممکنه یه کسی خیلی برای آدم بده. آدم محترمی باشه، محبوب باشه ولی شعر کنه بخونه آدم خوشش نمیاد. حبیب اینجا به قرینه ای که بقیز داره و غیره و اینها با اون مقدمه که اون دو تا اول به ذهنش میده سه حبیب یعنی محبوب فعیله به معنا مفهوله مثل بقیز به معنی محبوب ولی وقتی دقیقت میکنید اون معنا میبینید نه اینجا حبیب یعنی حبیب ابن اوسه تا شاعر بزرگ یعنی آقای عبود تو بحث نگاه کنید کلمت و حبیب فیلم ساله اوله لها معنیان اهدو هما المحبوب و هو المعنى الغریب اللذی یتباده روی نزده معنی نزدیکه که به ذهن انسان میاد به سبب تمهید لحو به کلمت بقیز چون اون کلمه بقیز هم کمکش میکنه مثل اون از شمس و القمر که کمک میکرد نه به معنی ستاره بشه و ثانی اسم و عوی تمامه از شاعره اسم آقای عبو تمام شاعر بزرگه و هو حبیب ابن اوست آقای حبیب ابن اوز. و هازا هوا المعنه و هاز المعنه و این معنا دور از ذهنه و قد اراده ها شاعر و شاعر همین رو اراده کرده که ما در دقت دقیق میکنیم ولیکن نهو تلت تفف و را انهو و سترخو به معنا غریب ولی لطافت به خرج داده و اون معنای بعید رو پوشونده در زیر معنای غریب و ما اولش گول خوردیم بعدش رو معنا کردیم دیدیم درسته مثل اون جمل که اول شطور فهمیدیم بعد وقتی دقت کردیم در سم ملخیات فهمیدیم که بابا این جمل باید معنای دیگه داشت بریم سر مثال دوم و قال نصیرالدین هممامی الحمامي در رأی حمامی که تو همون کار دیگه پایین میگه کان یحترف و بکترایل حمامات به مصر کسی بوده که یه یهترف یعنی حرفه داشته یشتغل مشغول بوده به اینکه کرایه میکرده حمامات رو در مثل ولی اینطوری بوده دیگه کسی حمام رو درست میکرده و غیر اینا اونو یه کسی بوده میآده کرایه و اجاره میکرده اون هممام داغ می کردهه و کارای نظافت و دش بعد درآمدی از اون در می آورده. به اون کسی که صاحب حمام بوده با اول خودمون چیزی رو میداد میگه این شغلش این بودهفلا ما کت سن بود درست شو. چغلش هممامی بوده وقتی که سن مش زیاد شد فعلا ماکه برد سن رو اختصره علل استجادته علل استجداره بشه وقتی سن مشترد خلاه دیگه همون کار کنه اختصره یعنی اکتفا اکتفا کرد برای اینکه استجدا میکرد استجدار یعنی گداری میکرد دست دراز میکرد بروش شد به واسطه شد این هم برای این برای اون یه چیزی میگیره. فلم ماكبر از سندهو اختصر و للاستجداء شعر و شعر او يدل على نبوغ و ابغریت اما شعرش واقعا دلالت بر نبوغ و نابغگی درمی‌کرد از اولم اشتباه کرده بود رفتو بوده تو همو بعد می اومده میرفته تو دربارا و شعر میگفت و این آه. و اون و ها و شعر او يدل على نبوغ و ابغریت ما تا سند سب امعتن وست نتای هشرت سال 712 هم از دنیا رفته تو ببینی که میگه میگه عبیات و شعر که کل قصور شعرش مدوره یعنی یک کلمه وسط دو تا مصرا نصف شده میگه عبیات و شعر که کل قصور عبیات شعرتو مثل قصر ها هر یه بیت شعرت مثل یه قصر درست شد ولا قصور به ها یعوق آقا یعوقو آئق بشه مانع بشه ولا قصور یعوقو به ها و هیچ کوتاهی هم در شعر تو مانع نیست کوتاهی توش پیدا نمیشه هر شعر تو هر بیتش مثل یک قصر میمونه خب یعنی زیباست و هیچ قصور و کوتاهی هم توش نیست ولا قصور به بین قصور و قصور جناس تامه اینا رو بلد با هم میگه ومنال اجایب از عجایب و قرائب تو اینه لفظه ها هردون الفاظش آزاد یعنی میجوشه و میاد از اجایب تو اینه که لفظش هرده میجوشه همینطور میاد همینطور لفظ از دهانت چرخ میشه و میده میاد بیار لفظه ها و معناها رقیق و معنای اون الفاظ هم رقیقه رقیق دو تا معنا داره یکی از رقیق یعنی بندگی درست شد و به غرینه هر آدم فکر میکنه رقیق یعنی عبد درست شد اون موقع معنا میشه از عجایب شعر تو اینه که لبسش آزاده همینطور میجوشه میاد بیرون از دهان و معنای اون الفاظ رقیقه بنده است در بنده اون که میشه مزمت در واقع میشه چرت و پرت که الفاظ همینطور بجوشه بیاد بیرون معنا در بند باشه معنا در غیت باشه الفاظ آزاد معانی در غیت این یعنی اینه غیر فصیح بودن و غیر ولیف بودن غلطه که اون داره میگه عبیات شعر تو هر کنش مثل قصر میمونه هیچ کوتاهی و زشتی هم توش نیست پس به قرینه اون مصر اول که داره مت میکنه بیت اول دو اینجا رقیق از بگید به معنای لطیف یه معنای دیگه رقیق یعنی لطیف روان میشه رقیقه یعنی معنای روان لطیف اون موقع درست میشه بگیم بله میخواد به یه از اجایبینه الفاظ همینطوری مثل رگبار از دهان بیرون میاد با اون که الفاظ همینطور مثل رگبار بیرون میاد معنا هم لطیفه معمولا الفاظ کسانی که زیاد حرف میزنن معنا چرند و پرند میشه ولی مالتو الفاظ همینطور رگباری بیرون میاد و معنا هم بسیار لطیفا، دقیقا، دقیق و قشنگ اینه که شده عجیب اینه که شده عجیب پایین نگاه کنید یعوغا یعنی یم نعومن ادراک جمال ها یعنی هیچ کوتاهی نیست که جلوی جمالش رو بکنید خب این روی نگاه کنید توی بحث میگه و کلمت و رقیق فیلم سال ثانی لها معنیان اول و غریبون متبادرون رود به ذهن میرسه و هوه ال عبد الممروک دلیل به این این به ذهنیه چیه و سبب و تبادرهیه از ذهنه ما سبق هم این کلمت هورد. دلیلش اون چیزیه که سبقت گرفته بر اون که عبارت باشه از کلمه هر اما معنای دوم و سانی و هوه لطیف و سهل لطیف روان سهل اینه معنای مورد نظر و هازا هوه لذی یورید و, و شاعر و این همون چیزیه که شاید قصدشو کرده میگه کجا میگه به خاطر اینکه اون مثل اول و دوم به بریت قبلش نباک کن داره تعریف میکنه ولی این معنای بعید رو زیر اون معنای غریب قایم کرده آدم وقتی کشف میکنه مثل اینکه یه ای بوده یا یه حل المسایلی بوده جدولی بوده حلش کرده چقدر قشنگ خود چیف میکنه میگه اه میخواست منو گل بزنه فهمیدم بعد ان سطر او فی ذل المعنى غریب بعد از اینکه این معنای بعید رو در سایه سار معنای غریب تنهام کرد بریم سر وقال الشاب بظریف این شاپ ظریف این شاعر یعنی جوان خیلی خیلی ظریف یعنی دارای زرافت یعنی اینکه انسان باش خیلی وقتی بش میکردی کیف میکرد انسان ظریف یعنی اشراف با یعنی جوانی که آدم از معاشرت با او خسته نمیشه نگاه کنیم چی بوده میگه هوش شمس الدین ابن العفی عطل مسانی این شخص و کانه کان عصر عصرهی یگانه روزگار خودش و قد فتنه به شعرهی لرقته و جمال فنی مردم قد فتنه مردم مفتون شعرش شدند عشق به شعرش برزیده شده به خاطر بودنش و زیبایی هنریش فنی وون دستند ست نعتن وست و ما تصند ستمعتن و سبعن و سمانین کم شده فکر میکنم 25 سال آره 25 سالش شده فکانت حیاتوهو خمسن و عشتینسن خودشون گفته حیاتش 25 سن. 25 سال هم کرده شاب بوده ذریب بوده شهرات هم قشنگ بوده آره یه شعر شده جوون مرک خب. رحمه الله میگه که تبسم از سقر و لوز از و لوز انتیب نشری صقر یعنی دهان میگه دهان این پسته بادام تبسم خندید انتیب نشدهی از بوی خوش خودش دیگه که نفر مثلا لباس نو میپوشه یا عطر خوبی به خودش میزنه ای به خودش نگاه میکنه میخنده. میخنده میگه این پسه که خندان شده این بادام لوز که خندان شده میمیده رباسه چی اینطوری شکاف مردار این از بوی لذت بخش خودش کیف کرد به وجد اومد تبست زمه تبست زمه سقر و انتی به وجد و اقبله فی حسن و رو کرد به ما در زیبایی که آمد به طرف ما در زیبایی که یجل و ان الوسی و با یه زیبایی اومد طرف ما که نمیشه توصیفش کرد و اقبله حسنن اومد به طرف ما زیبا درجه یک و اقبل فی حسن این فی حسن یا جلوان الوصفی این فی حسنن حال است از وره فایل اقبله. یعنی اقبله عظیمن حسنن در حالی که زیبا و قشنگ و درجه یکه به رو کرده ما خب پس گفت چی؟ گفت نگاهتی نگاه کرد نگاه به این بادام به این پسته این دهانش باز شده بود گفتین از بوی خوشش که بوی قشنگی داشت میداد این درخت این لذت برد میگه از لذت به خودش بالید خندش گرفت دهانش باز شد و رو کرده به طرف ما ما داریم میبینیمش با یه زیبایی غیر قابل باز که نمیشه توصیف بعد میگه حلوم موهده ای. حلومو یعنی عقبرون تعالون بیاید به سوی این لوز بیاید به سوی این بادامو ای که خندان شده بین قصف و لذت بیاد به طرف این بینا قصفن بین قصف و لذت بین اینکه که قصف کنید و لذت لذت خوب مشخصه این یعنی لذت بگید قصف دو تا معنا داره درست شد یک معناش به معنای در شکستن و خرد کردن میگن قصفت داهران درست شد دیدین اینا دیگه یه معنای قصف هم یعنی مشغول شدن و بازی کردن الان اونی که بیشتر در قصف به کار میره در همکوبیدن و خورد کردنه این به ذهن میرسه میشه حلم و بین قصف و لذته بیاد به طرف این در حالی که میشکنید و لذت میبرید بعد میگه فعیل نقصونه زه تسله تسله للقصفی زیرا شاخه های درخت شاخه های این شکوفه های بادام تسل و للقصف این شکوفه های بادام که باز شده تسل و للقصف سلاحیت داره شایسته است برای شکستن اگه باشه که یه از هم زیست میاد میگی ردش اینجور نمیشه که میگه که شکوفه بادام باز شده و از بوی خوشش باعث شده خندش بگیره کیف کنه باز بشه و به طرف ما آمده این شکوفه با بگی شکل بسیار زیبایی بعد گفته بیاید باید بزنیم در داغونش کنیم و لذت ببریم زیرا شکوفه هایی که هایی که شکوفه داره صلاحیت برای خورد کردن داریم که اچرب شد بعد میگیم نوابه بر بالا که داشته اینقدر قشنگ میگرده بعدم میگه لذت ببریم تو شکستن خود کردن که لذت نیست یعنی بیاید مشغول به دیدن این بشیم و لذت ببریم زیرا شکوفه های شاخه های شکوفه دار شایسته لذت بردنه قصف به معنای دیدن و لذت بردن و مشغول شدن نه به معنای درهم کوبیدن و درست شد. نگاه کنید بخونم میگه و کلمتا القصف بالمثال الاخیر معناها القریب معنای قریبش القصف به دلیل تمهیده لحاظ المعنا به قوله ای فا ای از ذر زیرا شاخه های شکوفه دار شاخه که میگی با شکستن بیشتر به ذهن میرسید و معناها البعید و معنای بعیدش اللعب و اللح بازی کردن و مشغول شدن و قصد پرتن سرگرم شدن وواضاح والمعنى الذي قصد اليه الشاعر این همون معنایه که شاعر قصد کرد بعدن احتاد فی بعد از اینکه تلاش کرده که اونو مخفی نگیه و یوسم ما هازن نوع من البدیعه طوریتن این نوع رو بهش و همون فن و این فن نیست که بر عفیره و مصر و شام این فنیه که مغارد پیدا کرد در اون در اون شاعرای مصر و شام یعنی همین بزرگانی که شما دیدید مال قرن ششم هستن و قرن هفتم هستن اینا دیگه اندشن با قول خودمون و هوا فنن بر فیه شعران و, و شام فلقرن سا و سامن منده در قرن هفتم و هشتم اجتر و عطا و فیه بله و توش یه چیزهای خیلی عجیب و قشنگ و زیبا آوردن الازی یدونده علا صفای طب که دلالت رو بر صفای طبع اونها میکرده اینکه چه استعداد بی آنایش و قشنگی داشتن ولقدرته و دلالت قدرت میکرده که اینها چه توانند بودن علا لعبه و اصالی به کلام که میتونستن با اسلوب های کلام بازی کنن حالا من قبلش دو دوتا برای شما از قرآن توریه گفتم که اصلا کپ کنن اینها بخوان چیز کنن اما ندارم که درسته و حسابی بفهمن که بخوان چیز کنن ولی کنون که از اینها فشنی بوده که به حدی که بخواد اصلا یک دموم یک صدوم اصلا آقای ریاست نیست حالا علمای برنه هفتم و هشتم برقه و این مال مصر و شام و چون خود این کتاب هم مصریست اون بماند سر جای خود بای بریم سر مطلب بعدی. مطلب بعدی صنعت تباق. این ساده است. تباق چون مطلب بعدیش که محسنه بعدیش باشه به این ارتباط داره، اینو باید خوند. تباق در واقع صنعت تضاد. تباق میگن، مطابقه میگن، تضاد میگن. آ مستر باب مفاعل هست دیگه دارست شد اتباق نگاه کنی چیه؟ اتباق الجمع و بینش شیع و زده هی. جمع کردن بین یه چیز و ضدش که این اتفاقا صنعت اتباق کمک به فهم معنا هم میکنه چون شما وقتی کلمه ای رو نمیدونید وقتی ضدش رو زک کرده تو رفول اشیا به از دادا این کمک میکنه به اینکه که بفهمید مثل اون منفق و منسک خلف و تلف که دیدید بلگلام. و همون نوعان این دو نوعه تباق دو نوعه یه تباق ایجاب داریم یه تباق سلب درست شد اول من تباق سلب رو میگم چون هرچی که تباق سلب نباشه تباق ایجاب هرگاه شما دو تا فعل در یک کلام بیارید یکی مثبت یکی منفی. این یه رو از تبع سلبه دو فعل یکی مثبت، یکی منفی. مثل حالی استقبال لذینا یا علامونه و لذینا لای علامون. حالی استقبال لذینا یا علامونه و لذینا لای علامون. یالمونو لای دو تا فیل داشته باشیم، یکی مثبت بگید، یکی منفی. از یه جنسه یه مستر مثل یعلمون و لا یعلمون الیست بالذین یعلمون والذین لا یعلمون این یه نوعش از طباق سر نوع دومش دو تا فعل داشته باشیم یکی امر یکی نحیه از یه جنس یکی امر یکی نحیه از یه جنس مثل لا هم لا تخشوهم وخشونی آیه قرآن لا تخشوهم از اینها نترسید وخشونی از من بترسید خدام لا تخشو با وخشو یکیش نهی است یکیش بگید امرست پس تباغ سر دو جور شد یکی دو فعل یکی مثبت یکی منفی مثل همین یستو اللذین یعلمون و اللذین لا یادمون. یکی دو تا فعل یکی امر یکی نه مثل لا تخشواهم و خشوانی یکی از راه‌های یاد گرفتن بدینه که شما اون در ذهن مثال یاد بگیرید ما هم با مثال تباسل رو بهتون گفتم دو تا مثال افتاد هر چی که دو تا کلمه متضاد باشند دو تا کلمه متضاد اما از این جنسی که ما گفتیم تو تباق سلب نباشن میشه تباق ایجاب هرچی غیر از این دو مورد اگر دو کلام داشت دو تا کلمه داشته باشیم متضاد باشه میشه تباق ایجاب حالا نگاه کنید میگه تباق و ایجاب و حوام معلم یختلف دیه از زدان ایجابن و سلبن اونیه که مختلف نیستند درش اون دو تا زد از جهت منفی و مثبت آن یعنی یه فعل منفی یه فعل مثبت یکی امر یکی نهی تضاد و سلب و, و فیهه از ضدان ایجابن و سلوان امرن و نهیت شد اینو فهمید حالا نگاه کنید بیاید بخونیم دیگه میتونید بفهمید چهار تا مثال زده دوتاش تباق ایجاب دوتاش تباق سلب البته تباق ایجاب در کلام بیشتر از تباق سلب قالت حالا و تحسب و هم ایغازن و هم رغود تو صورت که میگه تحسبهم و هم ایغازن. شما از خواب کهف رو ایغاز گمان میکنید ایغاز جمع یغز یعنی بیدار گمان میکنید اینا بیدارن درست شد و هم رقود. و حالا که اینها خوابند رقود جمع راقده و حالا که خوابند حالا ایغاز با رقود سلب و ایجاب نیستن ولی متضادتن ایغاز یعنی بیلاران رقود یعنی اونهایی که خوابند افراد خواب این و رقود روغود واقع خالی هست درست شد ایغاز پایین میگه جمع یقز که یعنی بیدار و رقود جمع راقد یعنی میام جمع نائم جمع میام هم جمع نائم و قال صلی الله علیه و آله و سلم رسول خدا فرموده خیر المال بهترین ثروت عین صاهره چشمی است بیدار سهر یعنی کشیک کشیدن ساهره یعنی بیدار و کشیک چشمیز، بیدار لعین نائمه برای چشمی که خوابه ما دو تا این داریم اینجا یکیش عین میدونید که عین و عین اولی به معنای چشم است دومی به معنای چشمه اینکه ما یه لفظ داشته باشیم دو تا معنا داشته باشه با هم خوندیم یک بار به معنای چشم آمده یک بار به معنای چشمه میشه چی چی؟ جناس جناس تا. درست شد جناس جناس تا صاحره یعنی بیدار نام یعنی خب میگه بهترین مال چشم آبیه که بیداره یعنی پلوک پلوک میجوشه و میره توی زیر درخت اون صاحب باق. و لعین نائمه برای چشمیه که خوابه یعنی شخصی که خوابه جز اگفته اراده گل کرده یعنی برای شخصی که خوابه چشمی که خوابه یعنی شخصی که خوابه یعنی بهترین مال کشاورزی اون هم صاحبش چشمه آبی داشته باشه که شب خودش راحت میگیره میخوابه ولی اون چشمه داره همتون آب میجوشه و میره زیر نخلستانهای اینون صاحره لعین این نگاه کنید یعنی ان خیر المال اینومائن این چشم است که ینام و صاحبها صاحبش خوابیده و هیت تزل و و اون تزل و یعنی تاثیر پیوسته فائز و جوشانه توسقی له و سرزمین او رو داره خبیرانی خب تسقی تسقی یعنی آبیاری کاری و مقام تعالی اینا مال ایجاب بودی سر و قال تعالی یستخفون من ناس میگه طلب پنهانی میکنن از مردم یعنی جلوی مردمش غلطی نمیکنن احتیاط میکنن از اینکه مردم بفهمند پنهان میکنن از مردم ولا از خفون من الله اما از خدا پنهان نمیکنن یه کار غلطی که میخواد بکنه اگه یه گربه انوای صده حالا خدا بهش احترام گذاشته گفته ملن ناس جلو چشم مردمش غلطی نمیکنه. اما جلوی چشم خدا هر غلطی دلش میخواد بکنه یا لا یستخونه ملن ناس یستخون و لا یستخونه قال از سماوال این شعر سما و سماواله به اون قصیده معروف خودش که جزو معلقات هم بعضی حسابش میکنن اگه معلقات رو عشق بگیرن میگه و نون که رو انشعنا علن الناس قولهم و ما انکار میکنیم بر مردم اگر بخواهیم حرفشون رو یعنی ما حرف مردم رو اگر بخوایم هیچ حساب میکنیم هیچ که آدم حساب نمیکن و نون که این ا اگر بخوایم الان ناس یعنی میون که رو الان نسه قولم، ما بر علیه مردم حرفشون اگه بخوایم هیچ حساب میکنیم. آدم حسابشون نمیکنه ولا یون که رو میگه خب اوننا ممکنه حرف شما میگه قرار ولا یون ک رو اون قلت ولی اوننا نمیتونن حرف ما رو انکار کنن سیرش بزنن اگر ما حرف بزنیم در مقام فخره ما حرف هرکیی رو نخواد میزنیم زیرش، ولی اونها نمیتونن حرف ما رو اگر بزنیم قبول نکنن میگه معنش شطر از ثانی انهم لشدت بعثهم یخشاهم ناس معنای مثل دوم اینه که مردم به خاطر شدت و قدرت اینها ازشون میترسن فلا که علیهم علیهم یقولون پس دیگه نمیزنن زیر حرفی که اینا بزن این مثالی که الان زدیم این مثال آخری یه نکته تو شما رو بدونیم شما شما درست شد توی ونون که رو انشه انا علن اون ولا یونکرون القوله اینه نقول شد هشتا بلکه بگیم نود و درصد نود و پنج درصد جاهایی که شما طباق سلب دارید، بلکه شاید من بیشتر از 95 درصد. طباق سلب داری دو تا صیغه از یک جنسند یعنی مثلا یستغفون لا یستغفر. لا یسو الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. علی یسو الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. حالا اون مثالی که من امر و نحیم مثال زدم که ایشون نزده، که اونم باید میزد لَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِمْ 95% درصد طوره ولی اگر با هم در سیغه هم مخالف باشن اشکالی نداره الان نونکرو سیغه 14 همه و لا یونکرو نه سیغه 3 همه. این هم هست 5 درصده پس 95 درصد دو تا فعل ها سیغه هاشون مساویه هنی درصد ممکن مساوی نباشه نگاه کنید البست ازا تعمل تا الامثلت المتقدمته وجد تا کلن مشتمل مشتملن علاشه و زدی فالمثال الاول مشتمل و نعلال کلمتین ایغازن و رغود و مثال و مشتمل و نعلال کلمتین صاهره و نائمه صاهره و نائمه و هم متضاد دمون یعنی خواب اون یعنی میدار اما مثالان الاخیران فکلون من هما مشتملون الان فعلین من ماده واحدتن البته دو جوره گفتم یه موقع یه فعل است و منفیش یه موقع یه امر است و نه اونو دیگه مثال نزده که من گفتم دو نوع اعتباه سلب اهد هما ایجاب ویون ول آخر و سلبیون و به اختلاف هما فر ایجاب و سلب سارا زده و یوسما الجم بین الشیع و زدهی فل امثلت المتقدمت و اشباه ها تباق هم میگن تباق و تصاف غیر انهو فل مثالین ال اولین اگه دو مفعولی باشه منو یوسما قیره غیر فل مثالین ال اولین یوسما تباق ال ایجاب و فل مثالین ال اخیرین یدعا تباق هست سردش میگن تباق سرد و صلی الله علی نبینا و آله طاهرین موفق و معید و منصور باشید ان شاء الله